بگرانی عزیز و خوششویست جوان ترین سلاوتن لیبیت خوشحالین بو امشویش لبشی پنجاو دوی خوان نویک تیوی چشتی مجیوری هجاری مکریانی حتی نوا خزمتن فرمون لگل مندابن. جارینو کریانی لا جارانوې بسره تجانی خويده هشتا لا دروبري موسکويه او د نوسه برياردرا بتمال لنګراد زور له دوستو برادرانو حاتبون برم کن قطر ساعت 2:30 شو درویشت و چن بو سيروج او چمدانه ګرانند بوچي لکه چوکلي سوکت پی به بس منځوتم اخر نیمه کلازی شروع کل کرد کانی گرچستانو چاوداری برآب بزمانی گرچی دکرد، وتی من دچم بودیم. دینم کی گول چند رایی چون از گا آقای خیامی نویک پیوکی هفت و پنج ساله کوچنای وزیر ایرانیو برزانی نزدیکی برزنیله موسکو حتی با از گا بوماره پیمود آقای قیامی زور شرم کردم. پیوتم نه کردم نه تو دوستی برزانیت لازم بو بیم سلطان و وطمیشی پتر لده جاران دبن چنگی کتام پیداویم دیسان بچو تشکوری لیبکا با پیری زحمت کشاو کچه کل آسایشگا دم نسیو نوی گالبو دگل خوشکی حات بون گوتم تکای تو خوشکت لباتی من سپاس لقیامی بکن هر دکچونو خوالیان کرده خوالی گوتیان چون زحمتت زحمت کشاوی امد دگل دینو ماله قیامی پیگو اگر جوان بام ندهاتن ممنون تانم خاولی و مولی و اسپابی رشتاشینم لساک دایا دگل دا علی اوف نوکی ازاری که دیلمان جمبو لواگونک داین توحالات گیشتی نه ازگی لینین گراد زور لنوسرانی اویحاتون پیشوازی شاعری کرد یک یک حتا درکی واگون گوتی کوچا مدانید ساکرشم داید استی لفلقی پیکنی داو یکی کتر تر لیور گرد. هر فلقو هر بو وتم خبر چی علی اوف گوتی تو ساکی خانمان تیناو دکتور کریم ایوبی پیدا بو گوتم بگیا وری گروه بی باو بخانمکت تا عبرو من بایگ جاری نچوا سی روز لینینگرد بو. پیشنیارویک لی موزی ارمیتاجم رابوارد که براستی منگی که دوی تا هموی بباشی ببینی. بسطن تابلوی ویتی دای که سرد لکاری خدا سرده مینه. لنه اوانه دا تابلوی یوسفی نجاری زرباو که مسیح در تاشیده که. مسیحی در دوازده ساله شمیکی با را گرتوه. او دلپاکیو خوشویستی که لروی مسیح نشنده وک بزمار دای چنجر چند جار به جمدهشتو در گرمهو سیرم دا وتیان ویتیان ام کشکش و وطاقیتی دای. همون لیواری بانکانی بدیان حیکلی لسر شقابون بیرم کرده و پادشاه بخوایی جنی و جنیو کرده و او همون خانوبری بوشی بوا. چو ما مزگوطی لینین گرد. مزگوطی که جوان و خوش و پر فراوانه. پره لمافوری جوان. ملایکی ملستور ددگود تگی دابسته یا بپیر موحاتو لبرخوای و بعربی ملایان دیگو، شکر با خدا. میاش کردن آزاده. با علیو فی ترجمانه گود. و دیاره نوش کردن لیره آزاد نیه چون که ملائیم هم خسانه نازنن فرک راو با میوانانی لاوکی اما بله علیوف گوتي لام وای راستی با چوی قرآنی که یک پرین دید ملائکه نوی عبدالبارئ بو گوتي او دیاری جمیل روش بیانی سلامی لیب که توش کچوی توا بغدا ناوم لما جلی عداب اسلامی دا بنوسا اوی سرنج راکشم لدرکی اودستکان با ترکی و بخط عربی نمزانی بو نکره او دست با روسی با کم زیانی هیا. لپاش گرانه اون با بغدا، لماال ملا مصطفى، ما مستا ملا جمیل روش بیانیم دید. چوم دیدنی کلیسا یاکوبسکی گرود، که گویه هی تیده حرکت زمینت نشانه ده. چوم دیدنی خانوی پوشکین المانی نشیرینین کرده بود، زور جگه جوانی ترمدیتن که المانان خراپین کرده بود. علمانم و عربان هاته برچاو که جوانی هنرن. هونرن چوم اوپیرای حود شاعر نظامی که ماسیقاری گوری آزاری قراقرایوف کردویت اوپیرا روز با یوگرتن میوزیکی بنرخ وکت سوفیلکه ایما با قرآن ببیستن وان با سرطه ویستم ل علیوف پرسم لده جواب پتر وشت وشت همو امیان دوباره دا کردوا یعنی با یو قسم بکه چوما بنکیر روجلات ناسی کوردی شکردی به لینینگرد اربیلی او پیاوه گورو به ریزه به فرمانی او خروشوف اجازه کردنوی او اموشگاه دابو درسی کردی لدخین راوک تیوی کردی چرده کرد به زیارتی سرفراز بوم خوازه که بیستی من مموزین مرگی و سرسورانی هر تواو کیفی هد هر بنابانگکانی روجلات ناسی شروعی بو به عاشق یعن احمد خانیو نظامی گنجایی بود. دیان گود لروجه اوربیلی اربیالی ویستویه در بری نظامی قصب کب. که بومبران شرک راو بومبای و سالانکه کتوه و بانکه لعایی دانشتوان ویستویه نه حالین، گوتویه بس یه نظامی تن بودکم. ایوا چونی باجه دیالن؟ همو گروه نوه جی خوین. قناتی کردیوف یکی گلمه مستعانی امشگاه کبو که زور ش خانم سیده رودینکو که مموزین و بیتی شیخ سنعانو چند کتی تری به شرح روسیه و چب داوه بود دا یا بو ما اشنا او خانمال دای که ارمنی و باو که که گردی بود کرمانجی وقت خلقی بوتانو فارسی زور باش دزانی خواهشتی کرد چن روش یک بمینم دیوانی شیخ سنعان یکی داگل وقت بینم که خط ملایان زور نخوشکی با ساغ نده بود نم دا توانی بمینم ق لماسکو را دعوتی لیبکم که اجازه و گریو لماسکو دا گلی بخوین موا. دکتور کریم ایوبیش هر لو اموشگاه زمان شناسی خویندوا. شنکشی ایره فارسی دزانی. چو موا موسکو. روش یک والاشین باسم کرد حتلام که پرسی هرم لیبکم. سالماسی ترجمان پرسی. بو. پرسی رادوی یریوان بکردی کوردستان ارخی چونه؟ گوتم راست دوی تنیا کسی که لهمو کردستان که تی اویش ایستا لیوه نموه، او کسش منم، پرسیاری کرد، آیا لخوان زراوکانی کردستان؟ کامیان بشی زورن؟ گوتم کرمانج، پاشان سورن، گوتی نه، یکی تر لحمان پترا، گوتم جناب، من باشتری دزانم، گوتی نخیر نیزانی، هر دستی بناو چاوانی و دگرتو پر لرانی خوید دو فیتی دا که دکشا، دیو، اییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بو بیرم نه ایتوا گوتم ده زنم تو منظور زازه یه اویج گوتی اریه اریه دیدتوا راز دکه من وتم کاکی که خوم به داخل و بحلاین بردوی زازه که کمن عراقی به هرچی سورانی نبید دالن بعدینی یان زازه یان زازه من پرسیارم لو کرد راجنامه خزبی شوی عراق چپخانه ایویا پول یاده نیه راجنامه خباد روجنامی هر بخور رای همو روش دو اونده شو ایکن لسر او لسر چینی کومونیز دانوسیو پیتان حل داله همو شو رادیو موسکو لی اتحاد و شعب نقل دکا با چی قد باسی خبات نکن بمونی که و لی و تی خبات ابراهیم اخمیت نوری اخمیت تخه پش دستی را یعنی هر باسی مکه دانشتم عریضی که زور به آبو تاب بولیجنه مرکزی لکرملین نوسی به هزار و یک دلیل اثباتم کرده بو که اگر رادیوی مسکو برنامه کردی ها بی چند باش و چند بخازنجی شوروی تا آده بی امجر هر کرده که در رواحات با موسکو دگه این مصریو دوانامه یکم پیده نوسیو به ترجمه کرده دم نارد بلکو بخته بگریو مسکو با کردی برنامه ها بی ب Dukes hatne la ل انیس کلوپیدای شورا ودان او هجر وخت شایری کوردو ناوی جګر خون چاب کروه ل گور انشمن پرسیوه ک هیل چابی تازه ده هر بده سال جارک چابی تازه ده کریته وب نوسری گوتوی هر من هم گوتم رنگت یتا نق یشتبه دنا او د زور ک سیوه من هيا نخواز نه ما وکان وک خانیو جزيريو نالیو مولویو زوری ترش ک د بوای روپر انیس کلوپیدای اند غیر کړده گوتیان، زور من پی خوشا، و من دانا، ویکوتم حفته و یک شاعر و نوسری کردم ریز کردو دامنی، دوی چند روش حد نولم، گوتیان دکتور کریم ایوبی دلی اوانا معلوم نیار دلیلی اوه، و تم بالی راز تکا دلیلی چی بین موه؟ دار هوری لخوی نبی ناقل شد، اوش چو؟ کریم ایوبی تیزی دکتوری لسر شاعر هجار ورگرد، دیار بود دوای لشیر کلم شاید ورگری روزیک لعاسایشگان نامی کن بود دلیم برای پروعا بچی دلن او کردی که نوسیم نمی‌دانم تو شعری کن با بنوسه که آمیت داره بیت که آمابو توتنو پرو اتروبون نوسیم برای تو معنای تروبون لی دوای آدم پروعا رونده بی تو کریم ایوبی بردمی آموزگار عربی ل مسکو وی دبیلوه به عربی قصب کهی منوام گوتوه خجالت مکه ماموستای هرگوری درس عربی سلطان اوف ناوک بو دستینا و دستموه اخلن و سخلن بخیری هنم بو خاتری با خاطر کریم به عربی فصح قرآنی نطقه که دو رو دریجم کرد همون ماموستاو شاگردکان سر دا جولنن پاشمان باسم کرد تیرین لچپلاده او جار به کریمان گوت تکایا بو من بروسی ترجمه که چون که هیچی تیه نده گیشتین. کریم دلی، جامنیش لعربی تیه نگیشتون. ناچار لسر را من با کردیو او برروسی ملمان لچقاچق نایوا. چون مموزه پیتری گوره، کواتال پیتری گورم لجوانترین شوین لسر لیواری چمی نیوا دید. لچنجه کواتال ملکه کاتری دی، که زور با حرمت یادگار ماون. شوئی خو منم دهات نبرچاو که که که لقبری پیوه گورکانی ل با بین سر باسی رنگ به هزاران رنگ مقاله ل سرجیان ل شوروید نو سرابه ک پیام نیری روزنامه جهانیکانی محتبر یان زانو دورناسی بنا وبنگون من ک وقت لبسر هات پیشم تیگیشتوی لیدانو زنی مارکسیم دا و کیرو کریناو زما وندم تو چن ل گورنی شعر ژاپونی دگی منی جلو باروامو کولتریش بلان من وقت دیو ما باسیده کمو اگر خوارو خیچی شد تیده دید بلیه کمی ببخشا. من چی روی که خمده نوسم نشی کردنوی مرکسیزم. چون لعراق و ایران مثلا اوتوبوسی نوشاران مالی او، پولی بلید با دولت دگاو شوفیرو کارکران کرن سریمانگ حقوق لدولت ورگرن لشوروی حموشت کراوات مالی دولت. به هره کاری همو کس به دولت دیگو همو کس حقوق لدولت وردگره هرکس به پی کاری خوی، های مانگی 500 روبل، هیشه مانجه خواد زانه چن چند وردگره و اتا لپنجا دولاره و تنازانم چند کارم بوانی که زانه یعنی آتوم و پای برزکان علمی چیانده درائه بلان نوسری وحبو ساله ملیون روبل دهد بود چون که جگه لوپول دولت به حق نوسی نکیده ده نسراوکی چند جار لچه بدرهاتوه نیوه با او بو که اگر طبقه دولمندی زمان نیکولا لناو چوب بو طبقه ای تر بدهات زوره و پیداه بو بو بلان فرقه که رده بو کس هرچند پولی هبا نی اتوانی خلکی دی بخاطه برکارو خوی با تمبالی بسرین رابگه کابرای که زور پول پیداگیشت هر دی اتوانی از پاپ نامال زور به بکره خوش بخوا و خوش رابیاره دولت که خوانی هموشتی نرخ نرخی هموشتی دیاری کردوه کاری کراوه که هر پولی که دا گردای راست برژیت نو داخلی دولت نرخیشتی زور پیداویستی زیان وکنانو پیخوری که لمال درست بکره هرزانوشتی زور نپیداویست دو دولمندن لوپاریگرانی دا بو ماشینی موسکویج که لبغدا به شانزه هزار روبل دفروش را بو خلق نوخو پنجه هزار بو کاری بیماندو هر زانو کاری گران گران قیمت بو. بجیشک حوصت و پنجه مهندسی ورزیری هزار و صد، کارگی کارامی کارخانه دو هزار و ور کاری شاعر و نوصر و هنرمندو هنرپیشه تئاتر و سینما لکار زور بنرخکن بو. وگده انگود اندامان حزب لخلق یر رمکی زور خوشتر تنانت دا جین. تناند جاک یک هبو کلقه تر دا دکتوری که هاوری من پولیس شو با کولانو خیابان داده دا گرران هر سر توش بو نایدن نرده گرتو خانه تا بیانی چند کسی کن گرتو نردین چون سر یکی کل بفرده دریش بو بو اف سر بو بده گوتی رفیق با تاکسی بر مالی چون که بو نی کونیا که گرانی موج با دو هزار و پیانساد تا سی بو یعنی کری چوارمانگی بجشگیگ رادیوی یک موج هبو که هر موسکوی ورده گرد به 25 و روبل کرده حقی بطلک ودکا یعن دوازده استکان چای لچخانه. او خلکه که لده هزار یکی زمانی لاوکی نازانه کاری بو راژیو هرزانه پیکده هد خواهنلا گریه دزیش لدولت و ملت دکره بونمونه خیاته بودیاری کرده دست جل به 200 روبل بدروه مشتری کده چو دفتر یکی زلامی لیک دکرد اندازد، فلانت باشه پاش حوت مانگو روا. اوش دیگو، کاکا که، اوزستانه، سرمامه، چون حوت مانگیتر؟ خیاتکه دیگو، ببخشا، من هموشت بناره خوی، اواندت خلق لپی شوید. کابره دیگو، دایک چاک، باب چاک، فکریک، چاریک، وقت تو دلی، قل گوم نگین نبهر. خیا دیگو، ها، خاطری تو دبیل مالو بود بدورم، بالام ده به 800 روبل بده خو اگر نشد ده به حوت مانگش راوسته بای جلکی کی بود دروی ل تاجیکن بتوره ستان تلویزیون ل مغازه کا مرخیان لسر نوس راو بلام دي سان بور هه دی هر وخت نورته چون که اوانه همو گيراو نه ود پرسی ادي اگر زیاتر بده کابل ده گو باشا یک چن هلق را خوانه راضی ده لای دلایک سرم تاشی شش روبلی سن سلماسی پرسی اوت کلونیان لیدای وتم باله و تی نرخی دو روبله بالامچواره که حقی اوت کلونکه که با خوبی بردو. ل machinesی تایبتی وزارتی لش سعیده دچمه وزارت ل خیابانی گری پولیس رایگرد بزیو دبازیو سرتیک کل حاتوا سلماسی پرسی چندی لی استنده وتم پیامگود میوانی لواخیم پیه دوی دا پنج روبل دادمی. هیچ مخالفه ش نبو بلم ناوی نصیبم چند روز یک نکردکوتم جار یک خاون تاکسی گوتی پولیس تشغله به همو تاکسی دکن لرد ام پرسو ورا ما لنیوان شوفیر و سلماسی دا راوره سلماسی وتی حقوق چنده سعر تاکسی گوتی 400 روبل دستان پرسیو جا چون پیداجی سعر تاکسی وتی پی پولدار نه سواری تاکسی ناب حساب تاکسیش لسر میتراج پیم دلین لسر مان راوسته ساعت ساعته. او ساب غش شکه که بشم ده دنه سل مسایل پرسی اگر تاکسی یکت شته شکا چدکی ای شوتی اگر تاکسی کم شکا د چم ل اداره دینو تاریخ یکم ده او جار خوم د چاکی چا لسر حساب خو چون ک لوانه ل اداره مانگ محتالم کن او ان بو خو چاک پولی چا کرنوی لسر دولت حساب د دی خون منیش کارم پکی نا بگرانی عزیزو خوشویست لیره دا حتی نکوتایی بشی 52 دوی خوین نوی کتیبی چشتی مجاوری هجاری مکوریانی تا بشی که ترپیتندگی نوا شوتن ارام جیانتن شادو بخت